صلاۃ و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و علی آله و اصحابہ اجمعین اما بعد حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام السلام وقتی که به منتقل شد و وزیر بزرگ میس فوتیفار حضرت یوسف علیه صلات والسلام را به کاخ خود منتقل کرد اللہ رب العالمین حیبت یوسف و عزاز یوسف را در دل آنها گذاشت و گویا مملوک یوسف بودن یوسف مالک شد و اللہ رب العالمین نقشه را بصورت تغییرداد اون عزمت و بزرگی یوسف علیه صلات و سلام قلوب مصریان را ربود و مالک مصر از کوچکی شد و عزیز مصر به گفت که اکرمی مسواح جایگاه یوسف را خوب بدار و از یوسف به خوبی نگهداری کن زلیخا یا رائیل اسم زلیخا در خیلی تفاصيل رائیل آمده بعضی میگن اون خانم رائیل بود و بعضی‌ها میگن که زلیخا بود یا احتمالا دو نام داشت هر دو مشهور باشن الله رب العالمين فرماد: ولما بلغه بلغ الرشد. آتین حکم و علم و کدالک وقت محسینی. وقتی یوسف عليه السلام بر رشد رسید ما بی یوسف علم و حکمت انایت کردیم. وكذلك نجز المحسنين وبعضيك الكاران ومحسنين هم چنین عملی را و هم چنین پاداش به آنها ما عنایت میکنیم اینجا خداوند متعال بفرماید وقتی که یوسف علیه الصلا و سلام رشد خودش را کرد و به اون مقام رسل عنایت کردیم اون عنایت بزرگی را این سن رشد ولا ما بلغ رو هست اینجا رشد در اصل بعضی میگن که سن 20 سالگی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میسامن سن 33 سالگی و یک قول دیگر هست که از سن 33 تا چهل سال بنا سن رشد این زمانی هست که اون ملکه روحانی انسان عقل و دانش انسان به بلوغ خودش بیرسه اون سنی هست که الله رب العالمین بعد از او حکمتها رو عنایت میکنن و بعضی از علماء فرمودند که بعد از او دیگه زوال هست و بعضی هم میگن یه قولی که اللہ ما علوسی رحمه الله ناغل کردین میفوند تا سن شست و سالگی سن روشت هست ایمی سن نموب و روشنائی انسان رشد انسان هست اما در نظر خیلی همون سی و تا چهل سالو سن رشد ذکر کردند حتی اللہ معلوسی رحمه اللہ ایک شعر جالبی آورده که میگه اگر کسی را دیدید دی شما که به سن چهل سال رسید و هنوز ام اقلش کامل نیست و کاره سبوکی انجامی دید پس در این شعر اگر سد سال هم زنده باشی خوب نمیشه دیگه تو اینجا که باید بلوغ فکریشو میگرفت نگرفت این پس آینده اگر زمان هم طولانی میشه پس برای خوبی نداره میبینیم خیلی ها که اگر تا سن چهل سال سی, سی سال والا تا چهل سال اون بلوغ فکری خود را حاصل مکرد اون ادب و اخلاق خود شونه گرفت بعد از اون دیگه تابر جلوتر بدتر میشه چون مثل خریف دار نزدیک میشه بدتر میشه پس اینجا فرمونه اگر کسی را تا سن چهل سالگی اون حیا مانه از فحشانه بعد از دود اگر دنیا هم طولانی بشه برای این شخصی برای مفید نیست پس وقتی حضرت یوسف علیه صلاة و به سن رسید به سن علیه از 20 سال تا چهل سال علم و اقوال دارن، الله می فرمان که آتینا الحکم والعید علم و, و حکمت به ایشان عنایت در اینجا این جای ای که همیشه قابل لحاظ هست این است که کسانی که به خاطر دین خداوند متعال به خاطر حفظ ایمانیات خودشان و به خاطر روحانیت خودشان در مشقات و مشکلات گرفتار وسند اگر در هنگامی گرفتاری در مشکلات صبر بکنند و به مشکلات تن نداهن، الله رب العالمین این هار مقایم به زوری انایت میکنه. آتن حکم و علم الله میگه ما حکم و علم دادی، حکمت و علم دادی کسانی که صبر بکنند در مشقات مصیبتها و از زیاد ناصبری نکنند، الله رب العالمین انها رو رحب ریت انایت انها رو پیشوا قرار میدهند. این هر مقام به زور خدمت دین از اینها میگیره این می ای اول نقطه اولش است نقطه دوم الله رب العالمین در مقابل این همه سختی که یوسف در کنان به چا انداخته شد اونجا بردگی فروخته شد در مصر آمد دوباره برده فروخته شد این همه سال صبر کرد اون انعامی که الله رب العالمین عنایت کرد مال نبود مال نبود هم نبود پادشاهی الله رب العالمین جا مننت نگذارستان اینجا حکمت و علم را بیان کردند پس بزرگترین نعمتی که انسان به اون درسه اون نعمت علم هست و نعمت حکمت هست اگر الله رب العالمین به شخصی بکنه. میکنه هم حدیثی است نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند که مایورل الله به خیر یفقهه فی الدین. هرگاه الله رب العالمین بخواهد کسی رو خیر بدهد و خیر به او برساند، او را علم دین نصیب می‌کند. هست اینجا الله رب العالمین برای یوسف فرمودند که علم و حکمت ما به او دادیم و پس بریم. این مقام بزرگی هست که اگر کسی استعفر بکنه، این بزرگترین حکمت دین، اون بسیارت بزرگ، فهم شریعت، اون علوم نباید کسی رو انایت شده در مقابل سختی ها دونها می راحت دونها نمی رسی فکر راحت گونها می رسی خیلی سختی ها سختی ها را تحمل بھی کنی منجا چون الله رب العالمین جای در مورد علمی فرمین که فلاو لا نفر من کل فرقه قائفت لیتفقو فی الدین لیتفقو فی الدین جا تفقو را ذکر کردن از باب تفاعل هست و تفاعل یا چیز با سختی حاصل کردن انجا حضرت یوسف علیه السلام را این نعمت بزرگ دادم اما الله فربودن که فلمّا بالغ رُشد به رشد رسید عاتف نو ماوردادی علم و حکمت حالا اینجا علما میفرمایند که نگاه وجود شکل انسان مثل این ماهه ماه, ماه طلوع میکنه یک بعد یک هلالهی هست کم کم ربی میشه بزرگ بزرگ تا ماه دوباره از اون ور کم میشه انسان به عین مثل همین ماه ها. اول تهلی هست نوزادی است رشد میکند نوجوان میشه جوان میشه سن رشد را میگیره ماه 14 میشه ماه 14ش دوباره کم میشه انسان به سن چهل سالگی بعد از ازو دوباره دیگه کم میشه جسم انسان بعد از ازو رشد نمیکنه عقل رشد میکنه تجربه ها رشد میکنند اما جسم بعد از چهل سال دوباره روئه جوان آهسته آهسته کم میشه از زو، از او کاسه میشه تا 6 سال شهت سال از او دیگه نزولش خیلی زیاد، خود زود فروت میاده زمین شکست آثار شکستگی بعد از سالگی خیلی زیاد نمایان میشن پس اگر نگاه کنی کل بقای ماه در فضا 28 روزه یک روز گم میشه در این 28 روز اینجا ماه را اگر نگاه کنی این نمو بیشت بوم شدن چهار هفته بیشتر طول نمی کسے تموح بوم میشے انسان هم چهار مرحله داره. مرحله اول هم مرحل تفولیت هست از تولو تا حفت سالگی ہیچ چیلیس درک نمی کنے اما سن حفت سالگی تا چهارده سالگی پونزده سالگی این محل روشت در شروع میشه. اینجا شریعت میگه آقا بعد چهار از حفت سالگی مروهم به صلات و هم ابناو سبع 7 اونها رو به نماز امر بکنی 7 خب سالا وازر هم و هم ابناو 10 سنین 10 سالا کرسید رو بزنیده اگر نماز نخوندن پس رشد انسان از هفت سال دار رشد میکوری کم کم به چهارده تا حالا اونجا دیگه بلوغ خود شو میگیرے اینجا مکلف میشه برای شریعت مرحله دوم از چهارده سال تا 21 سال که کامل رشد خود را گرفته و جسم داره کامل میشه از اونجا تا 33 سی سال بعدی دیگه انسان کامل هست و اون معارف را درک میکنه پس اینجا تا سن اول تا سا 14 سالگی جسم انسان کامل نیست قوت انسان ضعیفه وقتی قوا انسان ضعیف باشن اون روحانیت انسان اون ملک روحانیت الله رب العالمین خالق کرده برای درک او معارف الهی برای دیدن غیبیات فهمیدن چیزهای عجیب حالت جیس ضعیف باشه این قدرت در روح نمی آید. و که بالاتر چون تا کچک هست رتوبات رتوبت بر انسان غالبه اون ملک نفس انسان ضعیفه. میری بالاتر بسیر سال شد آزا قوی میشن ها قوی میشن محکم میشن بدن قوی شود. رطوبات از بین میرن یه روحانیت میمانه حالا انسان ها بعضی میبینی که از خوب بین خود انسان ها خیلی بمعنیویت خیلی علاقه دارن بعضی ها خیلی ذهین میشن بعضی ها خیلی کون ذهن میشن بعضی دنبال تلاززاز میرن بعضی دنبال سختی ها ریاضت ها میرن این روح انسان این آمادگی رو برای هرچی از اینها داره وقتی میره بالاتر حالا اون کمال رشد را گره حالا انایت میشه چیزها در کل جهان عربها قبل از اسلام تا زمان سن چهر سالگی آدم نمیرسی در اون زور به قانون مکه که در دار و تشکیل میشون هر عضو نمی کردن بعد چهر سال حالا هم در کل جهان نگاه کنیم بعد چهر سالها رو برای خوستها استقبال میکنن هر کسی استقبال نمی کنن باید سن بالا چهر سال باشه سیور شو م یا بالاتر باشه توستها روا گزار می خاطری خاطر بلوغ فکری اونها بعد از کامل میشه به هر حال این از که الله رب العالمین می که یا ایوها الرسول کنو من الطیبت و عمل صالحا پاکیزه بخوری و عمل صالح انجام بدی، چوبت پاکیزی بخوری جیس نشما پاک میمونه جسم جیس پاکمون اون چیزهایی که بر روح کنه از اون حرام و چیز آلوده نیست بعد روشت روحش ما قبیتر میشه و بالاتر میری و ال... نجز کذالک نجزل محسنین و کذالک نجزل محسنین الله به این صورت ما پاداش میدی نیکان را بود که محسن باشند خوب عمل بکنند و دنبال خداشناسی باشند یوسف اونجا رفت رشد میکرد تا روشت میکرد میکر. زیبایی بیشتر نمایان میشد انسان دستین چهر صابر یک کامل بلو خودش را گرفته هم جوانی کامل هم زیبای به کمال میرسه موسف علیه صلات و سلام در حال رشد بود رشد میکرد زیباتر میشد زیباتر میشد اون جوانی اون بیشتر نمایان میشد وقتی بیشتر نمایان میشد بیشتر قلب رائیل یا زلیخا رو زخمی میکرد. اون زلیخا دیگه رفته رفته وابسته میشده دلاتر میرسیم به آیه که قدر شغف و حب که محبت یوسف کل وجود زلیخها رو تسخیر کرده بود در رگ ریشه یوسف و اونجا دیگه یک ریشه دوانیده بود کل قلب زلیخها رو تسخیر کرده بود یوسف علیه سلات و سلام وقتی که در اون خونه که نزدیکش هست او را ببینه بیشتر تمایل بیشتر و به خصوص زمانی که همسر نامرده باشه همسرش توانایی جسمش کلن از دست داده عقیم بوده خود به اسلام عزیز مصره عقیم اصلا توانایی نداشته علی خانم از زیباتری خانومای مصره و وقتی اینجوری واشه قدرت هم کامل و جای ارضا وقتی که نیست اینجا نفس او بیشتر انجا فشار بی الله رب العالمی فرمان که و هو فی بیت عن نفسه وغلغت الابواب وقالت هیت لک قال معاض الله ان ربی احسن مصیا ان لایف حظالمون ترماً که وراادت حلت و فی بها آمادش کرد یوسوف را کسی که در خونهش بود، وغلغت الابواب و درها رو قفل زده. ال بعد مفستی می که هر تااد رو قفل کرد در در آخر یوسفر را گذاشته بوده. وقالت حیت لک گفت که بیا اینجا قال معاذ الله فنا خدا انه ربی احسن مسوایا این پروردگار من است که جامنو خوب کرده الله رب العالمين ظالمین را دوست ندارد حال اینجا زلیخا برای انجام پساد راودتلتی از مرابده است مرابده یعنی کسی را با نرمی، با نرمی آماده کردن برای فساد. بعض اینکه مراوده برای فساد بکار کار ره. الله تو اسلام وقتی که اجازه بکار می بعض مراوده، بعد این جوری گفته. اما بعضی معتقدن که نه که مراوده یعنی کسی را با نرمی آماده کردن برای انجام کاری. و اینجا الله رب العالمین این داستان از خود مشکلات یوستو جدا ذکر کردن، با اون داستان ذکرش نکرد. چرا یعنی با اون هم مشکلاتی بود داشت این یک مصیبت جدیدی بود غیر از اون بردگی ها که اینجا بردگی فروخته شده بود. این مشکل و جداگانه الله العالمین اینو نسبت تو که این مشکل مشکل روحانی بود جدا گرفت که اون هم مشکلات جسمی بودن از پدر گرفتن جسم فاصله گرفتن. فروخت زدن و طبیع کردن اونجا جسمی بودن. فروختن جسمش فروخته میشه برک فروخته رو همه جسمی بودند. اما اینجا وراودت ها اینجا آمادگی نفسی یوسف بود که اون را میخواست آماده بکنه برای فساد الله رب العالمین وشکل را جدا ذکر کرد یعنی از دو جهت یوسف علیه السلام اللہ و مول شکنجی قرار میگریفت هم از طرف جسمانیت و هم به طبع روحانیت و نفسی مورد حمل قرار گرفت. او آماده کرد ذلیخان وقتی که داخل و ها رو کرد در ها رو بست و یوسف بس رو داخل گذاشت قالت حیت لک. اینجا حیت بعضی کلمه رومی هست دوباره به عربی هم بکار میلی یا بعضی دیگه گفتن کلمه حیت کلمه عبرانی هست احنا. حالا فرمودند که الله رب العالم فرمودن که حیت لک. بیا بیا اینجا حالا چرا خودش حرکت نکرد این هم سیاست خانومها. ها کلی کل آمادگی مراوید از طرف اون اما خواست او را مقصر بکنه قالت هیت لک اینجا یعنی اقدام از طرف تو واسه خواست او را طرف خودش بی آورد و خودش به یوسف علیه صلاة و سال را. چون که اللہ سردار بود و شهبانو بود داخل قصره و با تمام آراش و زینت اونجا خودش رو گذاشت تمام زینت را ظاهر کرده بوده و این خاص که بیا اینجا و حضرت نصف فرموندن که معاذ الله پناه خدا معاذ الله یعنی اعوذ الله از خدا پناه می طلبم اینجا حضرت نصف علیه والسلام با این کلمه خیلی با مبالغه زیادی اللہ رب العالمین و اینجا ندادان تاهم بودن معاذ الله یعنی بار اله اون انگیزه فسادی که انسان بتر فساد می کشانے۔ ای خدا اون انگیزه از من بر بدار اگر اون انگیزه و اون جوهر از بدن برداشته بشه، حرکتی صورت نمیگیره. اینجا میرسونه اون عسمت بزرگ یوسف علیه صلاته و سلام را نفرم بودن خدا یا اون از من بر بدار او رو حلاخ بکن من از اینجا بر بدار به ها بر یک فرشته بنا اینجا بیرون بکن اینجور نفر بودن فرم بودن معاذ الله فنا به خدا یعنی طلب که طلب بو از الله رب العالمین بار الہ من اسمت را پاکی را از تو طلب میکنم به صورتی که اون انگیزه فسادی که انسانو به فساد میکشانه اون جوهر از من بیرون بکنم اون وقتی بر بیرون ابدیت کامل میشه اطاعت کامل میشه در عین گناه گناه نمیکنه همون ای خدا این قدرت به من بده که گناه بکنم این است که انسان باید این از الله بخواد ای خدایا به من اون انگیزه و, و توانایی بندگی رو انایت بکن بتونه بندگی بکنم بتوانه در مقابل سختی ها استقامت بکنم این حضرت یوسف علیه صلات و سلام از الله رب العالمین خواستم باید فرمونم که انه ربی احسن مسوایه اینجا دو معنا دار خطاب زلیخاکن که این آقای فوتیفار که منو اینجا آورده این آقای من هست که من خیلی جای خوبی داده داره از من خوب پذیرایی میکنه احسن مسوایا آیا من بیان خیانت بکنم بی من گناه بکنم اقدام روی فساد بکنم این نیست اللہ رب العالمی کسانی که فساد نیکو نهارو دوست ندارده نهارو دوست ندارد وقتی وا. از ایک اشکال میگه تجوری حضرت یوسف که نبی بود به یک انسان گو ربی انه هو احسن احسنما این رب من هست جوابش این است که چون اگر معلا هم رب باشه معنی آقا علما می فرمائند که به یعنی کسی که من در اختیارشم، در از من پذیرایی میکنه کسی مالک به بظاهر هست و اما در این شریعت ما گفتن رب برای غلام جائز نیست غلام اگه این رب من هست به آغایش لگه نمیتونه داخل صحیح مسلم حدیثی داریم که نبی مکرم سلام صلی اللہ علیہ وسلم از این نایی کردن که انسانی انسانی دیگه که رب من هستو اینو نگوین چرا دا تیو صحبو. این شبه شرک شرک در تمام ادیان الهی حرام بوده در تمام ادیان الهی از زمانی که آدم آماده شرک حرام بود در هیچ دینی شرک حلال نه از گناه ها اون گناہا هستند در تمام ادیان حرام بودهن یکی از اونها شرک دروغ زنا این گناہا که در تمام ادیان گناه بودن بعضی هستن در کل ادیان گناه نیستن اصلا نوشیدن شراب در دین حضرت مسیح علیه الصلاۃ و سلام حرام نیست مسیحیان می خورن. و قبل هم حلال بوده خیلی از اونها که برای ما یا خوردن خنزیر برای اونها حلال بوده پس بعض از گناه ها مشترکن در تمام ادیان حرام یک از اونها شرکی پس اینجا در دین حضرت موسی یاقوب شرک حرام بوده اما کلماتی که دو پهلو بودن دارا چندین معانی بودند در اونها به شدت به کار نبرده شده میتونستن به کار برن اما در این شریعت استعمال کردن کلماتی هم جایز نیز استعمال میکنند یمانه بعدی این است که حضرت یوسف علیه الصلا و شوق گذار پروردگار واقعی رب بشد هم بوده این نهو پروردگار من این همه احسان برای من کرد به خاطر اطاعت آیا جواب احسان رب حبید است من گناه بکنم نه من گناه نمی کنم من گناه نمی کنم بلکه این است که اینجا من از اللهان شوق گذارم انسان با گناه به جایی نمی بلکه انسان به وسیله اطاعت پروردگارش میرسه. حضرت یوسف علیه صلات در دو کلمه یک معاذ اللہ یعنی فرمود ب... از اللہ خاص باری اللہ تا زمان توفیقات تو نباشن من هیچم کار نمیتونم بکنم اول فرمودند که خوبی را با خوبی جواب میدهن. دهم جزاء احسان، والعحسان احسان، خوبی با خوبی اللہ رب العالمین احسان کرده منم باید اینجا احسان من بندگی هست اطاعت پروردگار است. فوتیفار احسان کرده جنایت نیست خیانه در خون فوتیفار نیست اینجا انجا حضرت یوسف علیه صلات و سلام وقتی که ارد از دله خواب که حیط لک بیا اینجا طبیبون معاذ الله اول به الله رب العالمی متوجه شد این درس هست که در هر کاری اول به الله متوجه شدن از الله رب العالمی توفیقات را خواستن و بعد از اون اقدام بعدی رو کردن اقدام بعد چی بود؟ نصیحت کرد او رو آرام کرد نصیحت به خاطر این کر کرد خواست اون عشق زلیخا بشکنه وقتی انسان وارد داره در گناه مبتلا هست او رو بیاد و خدا بی که از خدا بترس و این کارو انجام نده و ذهنش را اگر از اون گناه منحرش بکنی تا حدود اون عشقش شکنه. اگر انسان روی چیزی متمرکز هست خیلی اونجا فواره داره میکنه داره جوش میزنه اگر شما جهتشو عوض کردید جهتش عوضونی با به خود اون انگیزه قبلی خیلی سوستر میشه. زیفتر میشه. به طور مثال انسانی خیلی در فشار باشه فوراً عوضو بگیره. عوضو بگیره آرامتر میشه. اون ذهنشو اگر یکی از بدترین چیزهایی که انسان رو در هر چیزی یاری بیکنه اگر عمل با اراده هم سو باشن اونجا قدرت میاد. اگر عمل و اراده هم سو باشن. مثلا اگر اراده شون چیزی هست. و او اون اراده حرکت میکنه زود به هدف میرسی ام اراد چیز دیگر هست حرکت نمی کنی نمی رسی جهازت یوسف علیه صلات و سلام که این رب احسن مسوایه اولی کاری کر خاص که اون غریزه باطنی زلیخه را آرام بکنه آرام تر بشه تا که راحت تر بشه از دستش دری بیرون جهاز شو تغیید داد که این کار غلطیت مسیحت کرد این از مس درست بعد این است که همیشه در مقابل منکر من را منکم منکرم فلیغییر و بیده فی لمیه سطیفه بلسانه و این لمیه فقلبه بقلبه و اضعف ایمان هرگاه کسی از شما منکری دید اول با دست بگیر اگر نتونستی با زبان نصیحت کن اگر باز نتونستی در دل او رباد بدان با دلت ردش بکن این زیفترین درجه ایمان رید. یوسف علیه السلام قدرت دست را نداشت چون اگر یوسف با دست مقابله می و زلیخار را این همین خدمه این همین ناکر اونجا بود یوسف را می و بعد اگر یوسف اقدام کرد جرم یوسف بیشتر می شد می گوی حمله کرده من دفاع کرده من زخمی کرده جرم ثابت می شد و حضرت یوسف علیه السلام یه نبی بود با حکمت و بسیرت باید کار میکر. اینجا می کرد اینجا و کوچفتنی حرکتی روز خامی شد، از هر جهت یوسف اونجا مقصر جلب داده می شود حمله کرده من دفاع کرده یا من زخمی کرده اون حمله کرده من زده اما اینجا الله رب العالمین از اون گذین بایدی با زبان نه ازمون اون کرده وقتی که به این صورت بود الله رب العالمین حالا حالات قلب و دارم میکنه ولقد و لقد حمت بهی و حمم به ها لولا أن رب ورحان ربه وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ولقد حمت به اراد کر زليخا قبی وحم بها و اراد کر يوسف لولا عن رب ورحان ربه اگر ان نشانیات پروردگارا نمیدید وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء همچنی ما برمیداریم سوء سو از يوسف این یکان من عباد المخلصین از بندگان مخلص مابوده اینجا لقد حمت به و حم بها اللہ باستها شده اینجا میگن که زلیخا اراده کرد یوسف اراده کرد بعضی از مفسرین بعض از افراد حشفیها اینجا تلاش کردند که اسمت یوسف علیه صلاة و سلام را زیر سؤال وران و بعض از مؤسرین قبل هم اهمکارو کردند را گناهکار و مقصر انجام معرفی رفی اما انجوری نیست. و لقد همهت بهی زلیخا ارادی کرد جازن کرد و همه بها او هم ارادی کرد، اما چه ارادی کرد؟ زلیخا ارادی قصد کرد برای فساد یوسف قصد کرد بر دفع فساد. این تفسیر بنده هست. اون اراده برای فساد کرد و یوسف قصد کرد بر دفع فساد. اراده دفع فساد را کرد. چو ما قبل و ما بعد این جمله ما رو تایید میکنه. بعضی میگن که یوسف هم اراده کرد تا حتی خیلی جلو رفتند و یک اقدام کرده گناه این از اسمت انبیاد دور هست نبی هرگز اراده گناه رو نکردی جا حضرت یوسف علیه السلام بعضی میگن که وقتی که زلیخا با تمام آرایش زیبای اونجا ظاهر شده با تمام آرایش و زیبای ظاهر شده یک اراده غیر اختیاری در قلب جرقه زده اما فورا نبی او را برداشت. نبی گفت نه این نبی است فورا برداشت هرگز در دل یوسف چه چیزی نه آمد؟ اینجا یوسوف بودن هم به اراده تا اینکه من زلیخه با از خودم دور بکنم و دست بکنم اون انگیزه افتصاد اینجا آورده. علت این نهطررف که اگر تفسییرایی که این میگن تا اوهای تفسیری غلط کردن بدونید. تفسیه است که الله رب العالمین این فرمایند که لالا رع برحان ربی اینجا تاخیر تقدیم است یعنی اگر اگر این دلال رب نبودن شاید اراده می کرد اما اینجا پیغمبر دلال پروردگر به وجود بودن اراده نکرد این تاخیر تقدیم هست در این عبارت یعنی حمم بها لولا الرب الحربي اگر اونها ار میگی یوسف هم اراده میکرد اگر یوسف پیغمبر نبود اراده میکرد انسان معمولی بود اراده میکرد الله عز و جل اراده می کرد اما چون یوسف انسان نیکی مصالح و پیغمبر بود از اینها از یوسف سرزره نشدند اول این است که الله رب العالمین ولقد تاکید ولقد حمت به تاکید در یوسف تاکید نیست و حمم بها یعنی یوسف غیر اختیاری اینجا و بعد این است که اللہ ما قبل چه جلوتر می فرمایند که فستعسن یوسف معصومان هو راودتنی هو راودتنی ان نفسی انجا فرماید که این من آماده کرده یوسف معصومان و جالگی فرمایند که ذالک اللی یعلم انی لم اخونه بالغیب جلوتر می رسید که ذالک اللی یعلم انی لم اخونه بالغیب که بداناً که من در پنهان در پرده خیانت نکردم خود الله رب العالمین کلام یوسف را ناقل میکنند که نه یوسف خاک مانده چرا؟ چون که به خاطر از بین بردر منکرات مبعوش میشن و بدترین منکر بدترین منکر چیه؟ زنا و فحشای لا تقرب الزنا این نفاهشا پساد مسیره اللہ نزدیکش نرید نازیدن یعنی ارادهش میتونه و الله دیگرارا از نزدیک زن ها نهی میکنه یوسف اراده میکنه چون خود قربان اراده کردن هم هست ده زدن هم هست وقتی که در گناه های بزرگ از نبی مکرم اسلام فرض کردن که گناه های بزرگ چی هستند بزرگترین بزرگ بزرگترین ها فرمود ال اشراق بالله یک شرک بخودا از بزرگترین بزرگترین ها دو حقوق والدین سه ان تزانی بحلیبه این است زنا نزنا کردن با زن زنا باز در همسایه از بدترین بدترینها هست. وقتی که اسلام زنا باز در همسایه را مسابی با, با شرک ذکر میکنه، آل شاق بالله، وقوق الوالدین و انتزان حليل التجاره. وقتی الله رب الاعلی انجام زنا باز در همسایه را با, با شرک مسابی ذکر میکنه. پس کسی داخل خونه شا از همسایی نزدیک تره زنیت عزیزی میسر از همسایی نزدیک تره پس چگوری اینجا امکانی که کار داشت هرگز چنی کار و چنین اراده اونجا وجود نداشت چون الله را با چندین آیه ما قبل ما این رد میکنه. ما قبل همی فرمایند که این یوسف این رو اراده نکرد. بعدی فرمایند که پس پاس محفوظ ما جلوسه در همین سوره الله سر وان که ذالک ليعلم ان لم اخره بالقیط تابیدون که من در, در پرده جه خیانتی من نکردم الا پرده یا دور از چشم دیگران یا در باطن خودم چنین کاری رو انجام ندادم والا رب العالم اینو بیان کرده اسمت انبیاء خیلی بالاتر چیزا. انبیاء بی این از این چیزها کسی بخواهد نهار بر انبیاء علیه الصلا و السلام ثابت کنه بعضی اینجوری میخوان به اثبات برسونن و بعد این است که الله رب العیف فرمودن که دو من عبادن المخلصین از بندگان مخلص من ها مخلص رو بندگان برمزیدهی که شیطان بر اونها تسلطی ندارد چون جا دیگه بیفهم فبی عزت هم اجمعین شیطان میگه قسم بی که تمام اینها را من دمراه میکنم الا عباد که من هم المخلصین مگه بندگان مخلصت را نمیتونه منه اینجا گم رو کنم خود شیطان داره میگه داره اعتراف میکنه شیطان الا که من همو مخلصین بندگان مخلص هرگز من با اونها دسترسی ندارم پس الله میگه پس ساعثه دارن به یوسف توهمت میزنن تو بعضی چند چیزهای گفتن اونها دارن به یوسف توهمت میزنن یا گواهی الله رب العالمین را قبول کنن الله فر بنا فسا یا حرف شیطانو قبول بکنند که من نمیتونم اونها الفشاری فشاری وارد کنم یا وسواس در اونها من بی پس وقتی این چنین هست از یوسف علیه الصلاۃ وسلام قطعا از این دونها کامل پاک بود و هیچ اراده بدی در اون نبود لولا ان را برهان ربه اگر اون برهان رب را نمیدی برهان رب چی بود برهان رب این بود تو معصومیتی و نبی و مقام نبوبت و اون حکمتیک الله اللہ انایت کرده بود الله زیاد گفتن بعضی گفتن یوسف بالاک نگاه کرد دید که که تاکر بود زنا نزدیک زنا نرو بعضی میگن که الله رب العالمین سحنهی باز کرد، حضرت یاقود جلو اومد و دست دندان گذاشت دن دن فشار دید یوسف فران تکان کرد یوسف و بعضی بین جیبریل امین آمد و اونجا اکیزت یوسف کوتا حویان اما اینها همین گفته شده اند واقعیت این است که آیه مطلق آمده الله رب العالمین در قلب یوسف اطلاع القا کرد تلقین کرد الهام کرد وای کرد یوسف اینها در شان تو و رب العالمین بالا مقام نبوت اون انگیزه را از قلب یوسف بیرون کرده به هر حال حالا حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام داشت می کرد. اما چرا یوسف اینجا وقتی که تاون اون حد پیش و اقدام نکرد؟ چون یوسف میدونه اگر من اقدام بکنم امکان زلیخا گریبان گیر بشه و محکن لباس رو بکشه لباس از جلو پاره بشه اگر لباس از جلو پاره بشه مشکل با درست میشه به خاطری هیچ اقدامی نکرد و در مقابل زلیخا فاصله گیده و این درست باید میرسونه در خیلی جاها فتنها اگر ما اقدام بکنیم برای رف خود فتنه امکانداری بدتر بشه، پس رازی فاصله گرفتن. یوسف علیه السلام به جای این که بره جلو فتنه رو خاموش کنه فاصله گیره، پس در بعض سرعت بعض فتنه ها فاصله بگیری تا که فتنه ها در امان باشی. هر جا با فتنه نمیشه مقابله کرد. هدی سیزاری نبی مکرر اسلام فرمودند صلی الله علیه و سلم زمانی می رسه که فتنه اینقدر قادر حضور آورن که برای حفظ ایمان خودتان برید بیرون داخل بیابان. بهترین مال مرد مسلمان همون گوسفندایی هستند که اونها رو میگیره میره داخل کوه از شیر اون و ایمان خود را حفظ میکنه پس اونجا هم نبی کریم فرمودن دای گایی برای نجات ایمان باید استثناء بی رو رفت نه داخل فتنه مقابل مقابله این درس حضرت یوسف اینجا این بود که حضرت یوسف علیه الصلا و به جای که بیرو جلوتر رفت اقام فاصله گیری بعد فاصله گری حرکت کرد حالا حرکت کردن هم دیگه دست درست بزرگ حضرت يوسف بود، درست بعدی چی بود وسط الباب رفتن به طرف در هر دو طرفه. حالا اینجا الله رب العالمه دست داره میده میگه در کار تو کاری به آینده داشته نباش آینده دست تو نیست نتیجه کارها دست من تو نیست کار ما عمل کردنه تو عمل تو بکن حالا نتیجه ها وعجوا الله بکن پس کار ما عمل کرده عمل بکن علت جای در توان موث عمل بکنی جلوتر در توان مانیس علو راهی اون کار الله رب العالمین استواد عمل را انجام بده بدونها را بگذارد یوسف علیه صل و دونست که در حق و غلغه تل و قالت ایتله درها بسته بودند در یعنی با وجود این بدون در حواستان ام به طرف در دوید یعنی کارمان از اینجا تا اون در کارمان به تا اونجا برن من. از اونجا بعد اگر هم در باز نشود من معزونم بار الله من به آمد آمدم اما جلوتر در بستگید برای من تا جای کار ما هست اقدام بکنی از جای کار ما نیست دیگه انو حوالی الله رب العالمی بگو بعدی آلا اینج جماعتی دوستان جماعتی کار مار نیست الله برو بخور و الله اللہ رسوله پدر میگه کار کو بگه اللہ الله قیه این اللہ رازاز و قوة المتین و الله اللہ رازی نیست این جور نیست الله میگه که تو کار تو بکن تو تلاش بکن رزق الله میده یک اصلا کار نمیکنم خونه میگورم میخوام که الله از غیر میرسونه الله چه تعهدی برای هیچ کس نکرده تلاش از تو نیست لایسا لِلانسان الله ماصع انسان تلاش بکنه بعد الله رب العالمین خودش عنایت میکنه پس اینج حاضرین دوستو برای صلوات واسه این درس که اول اقدام اقدام بکنی برای کارتان حواله بعد الله رب العالمین میگه یکی از بزرگان در زندان بود زندان باک زندان بود روز جمعه که میشد هر جمعه لباس زیبا میپوشید عطر میزد پیش شیشویر تمیز می کرد میرا قاضی میدارد در, در باز نمیشود گفتن چرا این کارو میکنید گفت امروز جمعه هست و والله رب العالمین میگن که پس اول ذکر الله هلشما به طرف ذکر الله برید برای نماز جمعه حرکت کنید پس ساینجا کارمند لباس کارمند من لباس دارم. نظافت کار من این رو دارم تا اونجا که باید تا اونجا میرن جلاتر اگر هم نتونم برم اون کار من نیست در بسته و روی من همین کارش که هر هفته این کار انجام میداد، از باز در هم ارزش بیشتر بود هر هفته استقامت کردن و در پشت میله های بسته کار خیلی سختی هست اما این کار رو انجام داد. پس حضرت یوسف علیه السلام اینجا حرکت کردند. در ماقابل هم اینجا کن الله رب العالم در بین ارادها فرق او فرق بودن که لقد همت بهی و همم بیها این اراده کرد اون اراده کرد اما نفر بودن که همم و لقد همم هر تا اراده کردن این چیزو نفرم بودن چون که یکی قصی بود ایه غیر اختیاری بود اون آوردو برای فساد اما اینجا حرکتی صورت نگیری اما در اینجا فرق الباب سبق الباب و سبقا هر دو تا ده و هم ذکر کرد دو تای تا طرف در دویدم علت این بود تو وقتی حضرت یوسف علیه الصلاۃ و السلام پوشت کرد به زلیخا زلیخا هم در تعقیبش دوید یعنی حرکت زلیخا به اینی حرکت یوسف علیه الصلاۃ السلام بود اما یوسف برای فرار زلیخا برای گیر یوسف بود اینجا حرکت کرد رفت از اینجا چلا هم تنها چیزی که دست زلیخا رو گره دستش به دامن یوسف افتاد و پیراهن پاره شد وقتی که بیرون و سبق البابا بیرون که رسیدند اونجا سید و آغا نشکیستاده بود فوتیفار رو دیدن. وقتی که دید اینجا دیگه شرمنده شد و کلا زلیخات فوراً روخ کلام را روخ کلام را عوض کرد به خود عزیز بیسر گفت که معاجز ابن عراض به اهل کسو الا یسجن او چی خیب کنی کسی که به اهل تو اراده غلط داشته باشه مگر اینکه او را زندان بکن یا بزن زندان بکند یا بزند حالا زلیخا نگو که هوا قصد او به طرف من آمده چون دروغ بود نفس زلیخا اجازه نمیده این چیزو به بی یوسف بگه تو فهمید یوسف راست میگه نگو یوسف به من حمله کرده بعد بگو که حالا کسی که اراده غلط داشته باشه بده و خانواده تو چیکار میکنه؟ ایلا این یوسف نه او عذاب یا زندانش می‌کند یا اوره بزن؟ حالا زلیخا هم اینجا چون که عشق یوسف اینقدر زیاد بود در هنگام صحبت کردن اینقدر مهتابان صحبت کرد تا یوسف را عذاب نده بازم. چون اگر کمی اشتوا صحبت می‌کرد امکان بود یوسف را بکشان می‌داد. گفت ایلا این یوسف نه اینو زندانش می‌که. اگر زندار میره یوسف باز میمونه در امان هست یا بعدها اون توبیخ بکن اما نگو او رو بکوش چونکه اینجا یوسف و اینجا کار یوسف نکرده بود چون ما قبلش که و یکی فستا بغلبا و قد دقویسو من قبل پیرا هست جلو حارش ده بود بعد خود فوتیفار هم اینجا خوش خشد داد این سوال مطلب همیشه کسا زلیخار رو نزد که خار توبیخ نکرد خاطری که چون فوتیپا خودش نامرد بود توانایی نداشت و اگر هم اینجا هر اقدامی کن ملامت میشد مجبور شد فوتیفا سکوت بکنه چون هرگز نتونست بود که اون حاجت زلیخار رو برآورده بکنه بخاطری دیگه ملامت خود مقصد به اززیحتی مقصر بود اینجا سکوت کرد بعد از اون وقتی که اینجا رسید و و از دلخواه اینجا فوراً زبان باز کرد، زبان دراز کرد، فوتیفا هر کی باشه حیا زود اقدام می‌کنه برای تصمیم گیری قبل از این که بپرسه چیکار کردی، چه طرفو بکشه؟ اما چرا خود از میسر اینجا روی رئیسون حرکتی انجام نداده؟ قبل از این که دلایلو بپرسه، کی چی نکرد؟ چرا سکوت کرد کر اینجا؟ با خاطری ای که اون دلایل کامل برای ز... خود از این مصر نمایان بود که مقصدی یوسف ری جوری یوسف با لباس عادی زلیخا با آراش کامل زلیخا داره با آرایش از اتاق بیرون اومد و هذا یوسف با لباس عادی بیرون اومد بعد از اون سالها صد در همون کاخ بود صداقت یوسف را عزیز مصر دیده بود فهمیده بود و سیطانی حای زلیخا رو قابله مشاهده کرده بود این خیانت ها در دیدش بودند ظاهر در این صورت بود یک جوان در یک کاخی که اصلا قدرتی نداره چنکاری که خیلی سنگین بود ظاهر کار بعد وقتی ظاهر شدی یوسف جلو زلیخا فرشت سر داری فرار میکنه اگر پس آلی فرار نمی کنی اگر جای قائم می شد با این دلایل جدی خود عزیز میس یقانی شد سکوت کرد و صحبتی هم و وشهد شاهد من اهل من احلها وقتی که جورشون، امروز با فوتیفای نفری بود، ویش و شهده شاد اهلها، ای شخصی، ای شخصی، از خود خانواده از دوله خدا واحیدا، این کانا قبیس قدر من دولر، فصداقت و هم که می‌بینیم، اگر فیراه از خوش پاری بود، پس از دوله خراس اون دروغ میگه، و اگر فیراه از جلو پاری بود، دوله خود روم میگه، و اون راست میگه. اینجا هم تعبیر خیلی جالبی به بکار بود یک کسی اول هم بود که بود یک کسی همراه با عزیزی نسی بود که بود بعضی میگویند که اینجا یک تیخلی بود تیخلی بود شیرخار از قوم خود زلیخا این گواهی داد که نگاه کن اگر پیراهان از زلو پاره هست پس یوسف مقصره اگر پیراهان از اگه پاره هست زلیخا مقصره چرا چون اگر از درو پاره پس یوسف اقدام کرده تا نظیبی نزیبی رو شو کشیده پاره شده اما اگر ازاغا پاره پس یوسف پشت کرده فراخ و از خاص او آماده رو دنبال شفت تا کی راشو گرفته میگن در تاریخ چهار نفر طفل در کودکی و در گهواره صحبت کرده یکی حضرت عیسی علیه الصلاۃ و سلام یکی همین کسی بر حضرت یوسف اینجا شهادت داد, داد. اگری هم اون برای جورایی، جورایی در بنی اسرائيل آبی بود سر نماز قبلا گفته اینو سر نماز بوده، مادرشو بو یا جورایی، یا رب امی و سلایتی خدای نماز هم هست، تو مادر، خودم جواب بدم نماز و خون رفت دوباره کو یاد جورایی، جورایی دوباره کو امی و سلایتی مادر و نمازی استادیا خودم ترجیح بدم نماز خون. سری بعد که مادر و ما تاسیم مادر آمده بود. بعد گفت و صلاتی مادر هست و نماز است نماز نافله واجب نبی و تفاردنه نماز نافذ داشت میخون وقتی نماز نفل بود حق پدر مادر مقدم هست بعد گفت که خدایا ایرو در افسار خانم های زاهنی میکنه این خانمی با یک شوپاه زناح کرد وقتی که زناکه بعد از اون حالا دیگه حامل شد باید حامل شد بچگی متولد که دور که خانم گفته این بچه از کجا این بچه جریج هست اون زنا کرده روید جریی خبر نبود اینجا عجیبه. الله رب العالمین همیشه اولیاء خودش رو در مسائل تهمت امتحان میکنه. چون خیلی سخته این حضرت مریم در تهمت امتحان شد حضرت نبی مکرم اسلام در تهمت حضرت عایشه اینجا امتحان شد حضرت یوسف هم در تهمت امتحان شد جریی هم در تهمت امتحان شد همیشه الله رب العالمین اولیاء خودش در او مسائلی که اصلین قابل برداشویستان انتحامی کرده تا به جهان انها را نشان بیت شیخیر انها پاک بودن بیار حال جورج حالا گفت که امی و صلاتی گریبتاش و خانم گو همین بابای کارو کرده اومده حمله کردن کل شو تخریب کردن بعد از دون دیگه گفتن که حالت چرا تو تو زنا کردی باقی کردن باقی گفننن نکردن بعد چرا بیاری دور کرد نماز خون بعد دعا کر بار اللہ. اگر هر چی هست از ذهنی دهن بچه بیرون کن زد و بچه من ابو که پدرت که که فلان تنکوان پدر من تبریه شد و یکی دیگه هم ابن اسرائیل بچه تو بغلش بود رج شد یک پادشای باشان و شوکت اغور کرد. مادر دو الله اللهم ابنی مثل حاضا بار الله این بچه برنو مثل ای این قرار ببین این پادشایی بکر ناکر باشه خادین باشه این تلفون تره علا باشه همراه بشه آخر خور از پیستان پیستان رو رو باستی داخلے داش پستان می خورد دهن از پستان پستان رها کرد کو اللهم لا تجعلني مثل هذا خدا من مثل این نکن دوباره شروع کرد شیر خوردن مادر رعب را در اوتر اینکه کنیز رو درختی باستی بودند خوب او رو می‌زدند مادر گفت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا خدا باشیول مثل این نکن کو اللهم جلی مثل هذا خدا بن مثل همین به کو دوباره شروع کرد شیر خوردن هم نکرد تا دوباره پیدا انتشار بزرگ شد، این حدیث صحیح هست داخل مسلم آیا. بعد که بچه بزرگ شد باید پرسید داستان تعریف کرد اونجا اینجوری بوده تو گفتی من مثل این نمیخوام و اونجا همین صورت تو گفت من مثل همین بکن گفت بله اون پادشاه ظالم بود اون جانی بود اون کافر بود گفت خدا من ظالم نکون من کافر نکون من بی‌بیر نکون اونجا این کذیز معصوم بود مظلوم بود گناهی نکرده بود گفت الله، من مثل همین مظلوم بکنم مظلوم از ظالم است. اینجا هم اینجا وشهد شهاده بن احلی ها اینجا شهادت داد همون از احل بسلات زلیخا که نه اینجور نیست اما نگاه کن چیز کلام زیبایی گفت نگو که راحت بیتونی یکا یوسف پاکی همون اینجور نگو چی گفت اونجا گفت که بیلی داستانو بیان کن، دلائل آورد ان انسان وای با دلائل قانه بکوری با زور نه دلائل او تو نگاه بکن اغلت را منطق را نگاه بکن اگر 피راهن از پشت پاره پس مقصسه زلیخا اگر 피راهن از درو پاره مقصسه رو یعنی اون دلائل رو نگاه بکن و تصمیم بگی یعنی همون بچه‌ای هم به خود فرتیفار چیزی رو گفت که را قانه کرد برای اون دلایل یعنی انسان وای تابع منطق باشه ده تابع زور با زور فایده ندارد اینجا با منطق اینجا پیش آمده با منطق رفت جلو و او رو اینجوری گفتن با بعضی میگن که نه این کسی که با خود عزیز نصر بوده، این مردی بزرگ بوده، یه حکیمی بوده، پسر اموی زلیخا بوده، پسر اموی زلیخا بود, وقتی بود و وقتی اونجا اول که وای پسر امو که حالا سزا صدای 파르 파르شدنيل 파르شد تو چون بیرون از خون اتاق بوده، اون داخل اتاق بوده نمازی که پیراهن پاره شده صدا رو شنیدن همین گفت همین پسرامی گفت که حالا تو که عزیزی تو عزیز مصری حالا نگاه بکو نگاه بکو اگه پیراهنش از عقب پاره هست مقصر زلیخا و اگه پاره هست مقصر یوسف یعنی با من صحیح رو خطاب کرد که اینجوری اینجوری بررسی کن و وقتی که هم نگاه کردن دیدن که پیراهن از عقب پاره هست و الله رب العالمه تعبیر زیبایی کردم تو انکان قبیس قد من قبل فصدقت و من الکاظبین اگر پیراهان از دروپاره هست این راست گفته و او از دروگویان است. نگفت نا دروغ را و الله رب العالمه چقدر رعایت پیغمبر شکر هو من الکاظبین او از دروگویان میشه نگفت نا دروغ هست و هم پرمودن که و انکان قد من دوره فک زد و من سابقین، او را از راس او یعنی راس از نبیمان، فلما راگ میس و قدغن دور، وقتی از پیروان از قاب پاره است، گال اینها، این که دکون نه، عظیم. این جمله کی گفت؟ وقتی گو که این از که دکون است، الشیطانی شماست. شیطانی شما شماس خیلی بزرگه. این جمله رو بیاین که همین هفیل گفت، همین کسی با از این زمین بود، همون این حرف زد. گفت کہ زلیخا این چه از از هست و شما این کارو کردی یوسف این کارو انجام ناداده و این دو می کید کن ان کید کن عظیم این شیطانی از خانوم ها وقت کید خانوم ها خیلی بزرگی همین چه سوال مطرح می شه الله جای می که کید انسان... شیطان ضعیفه کید شیطان ضعیفه جالی که انسانو ضعیف خلق کردیم اینججوری کیدش قوی است خلقت انسان در مقابل قواتش ضعیف قدرتش در مقابل مخلوقات دیگر اما قید و حیله در مقابل قدرت قوی تره و فهمودن که همیشه شیطانی خانومها نسبت به آقایان خیلی قوی تره حتی مکر خانوم از مکر شیطان هم قوی تره تو شیطان وسواس میکنه میره اما خانون جلو میبینی گرگی میکنه تسنوی میکنه حرکتی نشان میده قلب تا میبره. نبی م... داخل صحیح بقایی حدیثی داریم که نبی مکرم اسلام فرمونه صلی اللہ علیہ وسلم فرموندن که خانوم عقل دانشمندترین آدم ها رو هم میبره خیلی زود عقل ایسان های فحمیدون رو هم میبره بخاطی فرموندن که همیشه فتنه خانوم ها بر این امت از همه چیز سنگینتر و بدتره نیگه من چیزی خیلی میترسن از فتنه خانوم ها نسبت به اینجا چیز هم این نکیدکون عظیم یعنی کهی رش در مقابل آقایان خیلی زیاده آقا هرگز نمیتونه تریف خانومی باشه هرگز نمیتونه شیطانی رو میکنن و بعد کل بوشکلات روی گردن آقا میاندازن به هر حال باید بودن که یوسف عارض انهازا و سخصری لزن بکی یوسف حالا بعضی میگن که خود عزیزی مصر گفت یوسف،, یوسف یوسف یوسف عارض انهازا. از این داستان روگردانی بکن و استغفری لیدم بکن زلیخا توبه بکن اینکه کنتم الخاتین تو خاته و تو جنایت کاری اینجا چرا اینجوری گفتن گفت یوسف عارضا هازا اما ما قبلش قبل چگه حضرت یوسف علیه سلات و سلام همون هی راودت نیان نفسی هی راودت نیان نفسی ای منو آماده کرده یوسف علیه سلات و سال پرده پوشی کرد چیزی نگفت سکوت کرد وقتی زلیخا را دید به سلا و الف یا سید حالد الباب و الف یا سید حالد الباب جلوی خود عزیز مصر آمد با آقا آمد فورا زلیخا زبان کشید و گفت این جنایت کاری اون زندان بکنم یوسف سکوت کرد اول چیزی نگو وقتی که زلیخا حرف زد و اسمت پیغمبر رو زیر سؤال ورد فورا حضرت یوسف دفاع کرد تا اون وقت میخواست که پرد توشی بکنه. وقتی زلی خاکف این مغسطره این ای کار کرده حالا زندانش رکوه حالا برای تبرعه انسان اول پردفموشی واجبه اما تبرعه نفس هم خیلی مهمه تبرعه نفس از حقوق دیگران مهمتره فمه هی راودتی نفسی ایمانو آماده کرده برای کار این برای فصاد بنا آورد من چیزی نمیخواستم. نمی بعد حکیم گفت که یوسف عادز انحاض یوسف از دین گردانی بکن یعنی دوباره داستان رو ول کنید که این فراموش کن. به کسی تعریف نکن. اینجا خاصا اون آوروی خانوادگی خود را حفظ بکنن و دوباره هم فورا به زل خاک که فستاقفیری لذت از گناه توبه بکن. اینکه کنتی من خاطئین تو از خطا خارانی. یعنی می‌شی. یعنی تو همیشه خطا می‌کرد. همیشه خطا تو سابقه ودارد. تو سابقه ودارد مخاطره مسابقه دوباره اونو بگه حالا یوسف پاکه. پس بلا بریم حالا تودی خطاکاری و یوسف تو رو گردانی می تا این داستان دوباره انشاءالله که هفت طولانی تر که دوار یوسف رو آلا زندان آوردن بسیم